تفکر برانگیز باشید عادت به طرح سوالات شما را به شنونده فعال به جای منفعل تبدیل می کند. با این تمرین به تجربه زندگی درونی متفاوتی دست میابید زیرا در واقع به شکل موثر گوش می دهید. می دانید که هنگام شنیدن صحبت دبیر یا خواندن مطلب حواستان پرت می شود. تمام معلمان و اولیا می دانند که این وضعیت غالبا برای دانش آموزان در کلاس رخ می دهد. تمام آنچه در سر شما رخ می‌دهد و در نحوه تبدیل شنیدهها به آموخته‌ها اثر میگذارد به دلیل حوااسپتی است. شنیدن کافی نیست. اگر دائما درباره آنچه میشننوید برای خود سؤال سوالته کنید میفهمید که حتی درسهای کسل کننده تا حدی جالب می شوند. زیرا بخش زیادی از علاقه شما نه از صحبت معلم بلکه از آنچه خودتان خلق می کنید به دست میآید. وقتی شخص دیگری صحبت می‌کند شما باید تفکر برانگیز باشید. پرسشگر رسمی باشید. من برگر هر روز در کلاس‌هایم دو دانشجو به طور تصادفی انتخاب می‌کنم و به آنها عنوان پرسشگر رسمی می‌دهم. وظیفه آنها پرسیدن حداقل یک سوال در کلاس است. یکی از دانشجویانم پس از انتخاب به عنوان پرسشگر رسمی روز در اوایل ترم به دفترم آمد برای اینکه سر صحبت را باز کنم به صندلی تکیه دادم و فارق‌البال پرسیدم آیا از اینکه اولین پرسشگر رسمی ترم هستی خوشحالی او با لحنی که انتظارش را نداشتم جدی و متفکرانه اقرار کرد پس از انتخاب شدن در آغاز کلاس به شدت مسترب شده بود اما بعدن احساس متفاوتی به کلاس‌های دیگر داشت. او گفت درس مانند معمول است، اما این بار باید بیشتر تمرکز کند. او سرزندهتر و به موضوع آگاه تر بود و با محتوای ظریف بحث هماهنگی بیشتری داشت. او اقرار کرد در کل از کلاس بهره بیشتری برده است. نقش او به منزله پرسشگر رسمی، تجربه او را به فعالیتی ذهنی تبدیل کرد که هر دانش آموز جویای موفقیت فهم و نمره خوب به آن نیاز دارد او آن روز نه تنها سوال کرد بلکه به پرسشگری منظم تبدیل شد و نه تنها به فهم خود بلکه به مباحث کلاسی نیز غنای بیشتری بخشید او در واقع نحوه یادگیری خود در کلاس و نحوه گوش دادن در زندگیش را تغییر داد شما با تمرین می توانید نحوه مسئولیت پذیری درباره فهم مطلبی که بیدرنگ گفته می شود را بیاموزید و فعالانه درباره مطلب جا افتاده، مفروزات، شهر و بستها یا نکات مبهم و نوازه سؤال کنید اگر از این عادت ذهنی استقبال کنید یعنی خود را هنگام گوش دادن به معلم یا هر موضوع دیگر به طرح سؤال ملزم کنید و بپرسید دست کم دو مزیت به دست می آورید. اول بهتر عمل می کنید و دوم دنیا به نظرتان جذابتر می شود سوال درست چیست ؟ متاسفانه اغلب مردم کل زندگی خود را صرف سوالات نادرست می کنند. آنها به دنبال پول می روند اما واقعا جوی های شادی شادیند به کسانی احترام میگذارند و تملق میگویند که چندان ارزش توجه ندارند بنابراین پیش از تسلیم شدن به ووسسه حل فوری سوالات همواره درنگ کنید و بپرسید اینجا سوال درست چیست؟ سوالی که واضح به نظر برسد غالبا سوالی نیست که به عمل مؤثر منتهی شود. سوالات شخصی مانند چگونه میتوانم موفق باشم یا، چگونه میتوانم در آزمون نمره خوب بگیرم یا سوالات اجتماعی از قبیل چرا آمریکایی های آفریقایی تبار در آزمون ریاضی ضعیف عمل می کنند؟ مهم است اما سوال موثر نیست سوالات موثر ذهن شما را چنان ورزیده می کنند که به بینش ها و راه حل های تازه منتهی شود آنها به فرزهای پنهان تاکید می کنند و مسیر پیشرفت را نشان میدهند بنابراین در سه سوال قبل چه اشتباهی وجود دارد و چگونه میتوان آن را اصلاح کرد؟ چگونه می توانم موفق باشم؟ سوال مبهمی است و تا زمانی که اصطلاح موفق را به دقت تعریف نکرده اید نمی توان به آن پاسخ داد. ابتدا باید بپرسید موفقیت برای شما به چه معناست و سپس سوالاتی طرح کنید که به عمل منتهی شود. هنگام پرسش درباره موفقیت آیا واقعاً درباره پول درآوردن سوال می کنید؟ در این صورت آیا به فرض پنهانی تکیه کرده اید؟ آیا یک بانکدار ثروتمند اما غمگین موفق است؟ آیا هنرمند فقیری که حتی یک تابلو نفروخته اما به هنر خیش عشق ورزد موفق است؟ باید موفقیت را برای خود تعریف کنید. تنها پس از آن می توانید درباره نحوه موفق بودن سوالات درست بپرسید. سوالات موثر درباره موفقیت شما را به کاوش و گسترش ارزشها، عادات و مهارت اساسی و با اهمیت سرخ می سوالات موثر به عمل متهی می شوند و مبهم نیستند چگونه می توانم در آزمون نمره خوب بگیرم؟ اگر دانش آموزید طبعاً به این فکر می کنید که چگونه امتحان بدهید؟ اما از غذای روزگار تمرکز بر آزمون قریب الوقوع به خودی خود بهترین راه بهبود عملکرد شما در آزمون نیست فرض کنید قرار است چند ماه بعد در آزمون ورزش سی بار شنا بروید می توانید روی تغذیه پیش از روز مسابقه تنگ و گشاد نبودن لباس ورزشی و کسب امتیاز 110 درصد هنگام رقابت تمرکز کنید یا به تدریج در وقت اضافه تعداد شناها را رو هر روز تا روز مسابقه افزایش دهید چنانکه دیگر در روز مسابقه با سی بار شنا رفتن قافلگیر نشوید چگونه میتوانم به بهترین شکل ممکن امتحان بدهم بهترین سؤال در مدرسه نیست سوالات بهتر عبارتند از چگونه میتوانم به مباحث درس بیشتر توجه کنم آیا میتوانم این مباحث را درس بدهم؟ آیا میتوانم برای این درس شرحی مفصل بنویسم؟ این سوالات به اعمالی منتقی میشوند که میتوانید انجام بدهید تبدیل شدن به شنونده فعال پیوستن به گروه مطالعاتی یا حتی بهتر از آن درس دادن به دیگران سوالات درست فهم شما را وضوح میبخشد و توجه شما را به جنبه های مهم می میکند چرا آمریکایی‌های آفریقایی تبار در آزمون ریاضی ضعیف عمل می‌کنند؟ میلیاردها دلار و تلاش فراوان حاصل صرف پاسخ دادن به چنین سوالاتی می‌شود. اما سوال فوق نادرست است، زیرا توجه ما را به جای متغیرهای واقعاً مؤثر بر عملکرد هر دانشآموز از هر نژاد بر متغیر نادرستی به نام نژاد معطوف می‌کند. متغیرهای مناسب ممکن است اینها باشند روش تدریس، منابع موجود، میزان کمک سودمند به دانش آموز، میزان تشویق و انگیزش، عادتها و روشهای مطالعه، زمان انجام دادن تکالیف، حس تعلق و اعتماد به نفس هنگام آموزش و پیشینه موفقیت یا شکست دانش آموز سوالات مربوط به این مزامین و رابطه آنها با موفقیت دانش آموز توجه ما را به شیوه های مفید هدایت می کنند. آنها ذهن ما را به جنبه از واقعیت جلب می کنند که می تواند در عملکرد فردی دانش آموز گذار باشد و سرانجام به انجام دادن اصلاحات نه با تمرکز بر جمعیت های نژادی بلکه با تمرکز بر جمعیت های با عملکرد ضعیف از تمام ها و اقوام منتهی شود. سوالات مؤثر مطلب مهم را آشکار می‌کنند. با جستجوی سوال درست به این نکته پی می‌برید که دست کم دو نوع ناآگاهی وجود دارد. زمانی که سوال درست را می دانید، اما جواب را نمیدانید و زمانی که حتی نمیدانید چه سوالی بکنید. روش برانگیختن تفکر مؤثر سوال را اصلاح کنید. از دیدگاه دانش آموز سوال چگونه میتوانم نمرات بهتر بگیرم؟ مؤثرترین راه کسب به نمرات بهتر نیست. سوالاتی از قبیل چگونه می توانم تفکر بهتر؟ و فهم امیختر را بیاموزم یا چگونه میتوانم بهتر ارتباط برقرار کنم یا چگونه میتوانم کنج کافتر باشم بسیار سازنده تر است برای آن دسته از سوالات زیر که مناسب شماست و مهمتر از همه سوالاتی که خود شما ترخ می کنید سوالات واضحتری تری کنید که شما را به نتایج بهتر برساند سوالاتی ترخ کنید که فرض نهفته را آشکار کند. به مباحث وضوح بخشد و به عمل منتهی شود سوالاتی از این قبیل که چگونه می توانم زمانم را بهتر مدیریت کنم یا چگونه میتوانم ظرف چهار سال آینده به شغل رویایی خود دست پیدا کنم یا حتی چگونه می توانم توجه این مشتری بلقوه را جلب کنم یا چگونه میتوانم توانم عادت ناخوشایندم را ترک کنم و یا حتی چگونه می توانم عمل دانش آموزانم را بهبود بخشم؟ هرگاه در زندگی خود با سوالی مواجه شدید، از این تمرین استفاده کنید، یعنی سوالات خود را دائما نقد کنید. مثال، ترافیک اگر گرفتار ترافیک سنگین شده اید و اتومبیلها ها سپر به سپر به طور ناراحت کنندهی به کندی حرکت می کنند، چه بسا با بیان سرزنده تر این سوال به ذهنتان خطور کند که چگونه میتوان مشکل ترافیک را حل کرد؟ جوابها ساده اما غیر عملی است مانند تسهیل جریان با تعریض جاده ها یا ساختن بزرگاه های بیشتر اما واقعیت این است که اگر رئیس جمهور یا شهردار نباشید نمیتوانید راه حل خود را عملی کنید بنابراین میزان عجز شما با فشار خونتان بالا می رود سوال شما خوب نیست به جای آن بپرسید اگر قرار باشد چهل دقیقه دیگر در ترافیک بمانم چگونه می توانم از زمان به شکل مؤثر استفاده کنم اکنون سوالی به درد بخور کرده اید شاید برای سرگرمی یا آموزش از کتاب صوتی استفاده کنید یا با استفاده از سیدی آموزش زبان زبان خود را تقویت کنید سقرات خود باشید سوالات مناسب در کلاس درس هنگامی که دبیر تکلیف می دهد به مسئولیت آموزش خود وظیفه دارد بپرسد این تمرین به پرورش و گسترش کدام تغییر مفید در دانش آموزان یاری می و این فعالیت چه درسهای ماندگاری می دهند؟ اگر دانش آموزید باید این سوالات مهم و مرتبط را بپرسید این تکلیف کدام تغییر مفید را در من ایجاد می‌کند؟ با انجام دادن این تمرین چه مزیت ماندگاری به دست می‌آورم؟ آیا آن را به دست آوردم؟ بنا به تجربه ما کسانی که این سوالات را می‌کنند و به آن عمل می‌کنند از کسانی که چنین نمی‌کنند ترند. مثلا می‌فهمید که هر بار هنگام نوشتن مطلب می‌توانید آن لحظه را فرصتی برای بهبود مهارت‌های ارتباطی و استدلالی خود تلقی کنید که عملا هر روز به شما در خانه، وقت کار و دنیای اطراف کمک میکند. معلمان باید تمرین هایی با اهداف بلند مدت از قبیل برقراری ارتباط و تفکر مؤثر طراحی کنند. با پرسش درباره اهداف بهتر میتوانید از تمرین ها بهره ببرید تا اینکه بخواهید با بیتوجهی آنها را از سر خود باز کنید. همواره به یاد داشته باشید که سوالات را نقد کنید. روش برانگیختن تفکر مؤثر فرا بپرسید در کلاس درس اتاق هیات مدیره یا اتاق پذیرایی سوال کردن درباره تکلیف یا پروژه پیش از آغاز جدی کار همواره به نتیجه نهایی بهتر می‌انجامد بپرسید هدف این کار چیست و این کار چه مزیتی دارد و هنگام کار این مزیت را به یاد داشته باشید محصول فرعی این تمرین در بیشتر مواقع ذخیره زمان است زیرا توجه شما را به مطالب اصلی جلب می کند و به شما امکان می دهد به سرعت از شر پریشان حواسی اولیه که همواره هنگام آغاز هر کار یا پروژه وجود دارد خلاص شوید. مثال مبانی خرس لطیفه زیر اهمیت تمرکز بر سؤال درست را نشان میدهد. دو مرد در جنگل قدم می زدند خرس خاکستری درندهی به آنها حجوم می آورد. آنها شروع به دویدن می کنند هنگام دویدن فریاد زنان با هم حرف می زنند. مرد اول نمی تونیم تونتر از خرس بوده ایم. مرد دوم من که مجبور نیستم تنها سوالم اینه که آیا می از تو تونتر بودم؟ مرد دوم سوال درست را پرسیده بود پیتر دراکر می گوید کاری از این بیفایده تر نیست که آنچه را اصلا نباید انجام داد با کارای فراوان انجام بدهید. آموزگاران غالباً نقش خود را برای ایجاد توانایی یادگیری در دانش آموزان بد میفهمند. وسوسه میشویم، شغل آموزگار خوب را مانند جویدن لغمه های کوچک تصور کنیم که دانش آموزان بتوانند آنها را ببلند. اما هدف اصلی گسترش مهارتها، و نگرش های دانش آموزان است چنانکه بتوانند در مشکلات زندگی مستقل فکر کنند و روش های خودآموزی را بیابند بنابر این چه بسا زمانی که آموزگار میپرسد چگونه میتوانم فهم این موضوع دشوار را برای دانش آموزان ساده تر کنم سوال نادرستی طرح می کند غالبا به شکل سریح یا ضمنی به دانش آموزان گفته می شود هدف از مدرسه رفتن کسب نمرات خوب و اخذ مدرک دیپلم است این موارد اهداف ارزشمند تعلیم و تربیت نیست جدا از نمرات خوب و مدرک چه مواردی را میتوان به عنوان اهداف آموزشی برشمرد هدف آموزش در حد آرمانی باید گسترش تفکر انتقادی و مهارت ارتباطی و مواردی از قبیل تقویت توانایی های ذهنی باشد اگر معلمان، دانش آموزان و جامعه بزرگتر اهداف مناسب آموزشی را تشخیص بدهند، تجربه روزمره دانش آموزان در جهت بهبود پیش می رود. اندیشه های نهایی، هنر خلق سؤال و گوش دادن فعال سوالات درست میتوانند ابزار قدرتمند و شگفت انگیز فهم و یادگیری باشند. سوالات بزرگ می توانند بینش های مهم خلق کنند. شما می با استفاده از روش های ملموس و سراست، سوالات اساسی طرح کنید. سوالاتی که شما را راهنمایی کنند و کنجکاوی شما را برانگیزند. سوالاتی که به شما بینش بدهند. بنابراین هنر سوال کردن را به عنصر هوا نسبت میدهیم. تفکر مداوم درباره سوالات ذهنیتی با اثر چشمگیر است شما سرزنده تر و کنج کافتر می شوید. زیرا هنگام شنیدن و زیستن خود را فعالانه درگیر می کنید شما راحت تر پذیرای ایده ها می شوید. زیرا دائما با شرایطی مواجه می شوید که درستی فرضهایتان را محک میزند. زند کارایی شما بیشتر می شود زیرا ملزومات کارتان را به وضوح تشخیص می دهید ساق خود باشید.